من واژههای ولگرد بی خیال خودم را می خواهم لطفا جمعه عجیب همان هفته های بی و گریه را به من برگردانید من پاره پنهانی از همان رویاهای خودم را می خواهم لطفا عطر بسات دست فروشان شنگان سالها را به من برگردانید من همان حرف های خیلی خوش خودم را می خواهم لطفاً هوای از بر کردن یکی دو ترانه از دریا را به من برگردانید من باران یک ریز همان پاره از پاییز تشنه را می خواهم لطفاً خواب خوش دیدار دوباره ریرا را به من برگردانید من پرسه های همان روزگار بی اسم آینه را می خواهم لطفاً عیش آسود از آن همه نداشتن اندوه و گریه را به من برگردانید سلام من مصطفیم و اینجا رادیو هجدهه بنفشه دخترکی که بنفشه و از غذا مهربون و یا بهتر اینجوری بگم که حداقل سعیشو میکنه تا مهربون باشه اصلا مهربونی چیه؟ مهربونی یه نیروی بزرگ و قویه که میتونه کل دنیا رو یه نجات بده و یا حتی بتره کنه این اپیزود نه درباره مهربونیه و نه حتی درباره این دنیا این اپیزود برای موجودی تهیه شده که رابطه خیلی نزدیکی با این دختره که همیشه ها به نفش داره. شاید اصلا برای همینه که سعی میکنه مهربون باشه تا بتونه کمی بار غم این موجود از روی شونه ترک خوردش برداره. این اپیزود تقدیم میشه به عصر و قروب جمعه ها. قروب جمعه ها، رأس ساعت هجده، دختره که همیشه ها بنفش ما با موهای طلایی تلایی فرفریش از راه میرسه تا کمی رنگ ماتم زده ی این زمانو از بین ببره تا حتی بعضی وقتا یا حتی بیشتر از بعضی وقتا با غم همیشگی های توی بنفش و هجده بودناش بتونه با همدردی هم که شده غروب جمعه رو توی بغلش گرم بگیره با, با دستای کوچولوش سعی کنه تا آروم شه اینجا رادیو هجده بنفشه و شما به اپیزود از فصل دوم اون گوش میدیم. اپیزودی که قرار تقدیم شه به یکی از تنها سرین دوستای این دختره که همیشه ها بنش حالا تو که میدونی بگو ببینم واقعا جمعه ها خونجای بارون میچکه عمر جمعه به هزار سال میرسه جمعه غم دیگه بیداد میکنه آدم از دست خودش خسته میشه آلا با یه بست فریاد میکنه داره از عبر سیا خون میچکه جمعه ها خون جای بارون میچکه موسیقی جمعه وقت رفتانه سیاه خون میچکه ها خون جای بارون میچکه اسقر از, از همون اول که اسقر آقا نبود اسقر خالی بود دوتا رفیق داشت البته اونا بهش میگفتن ایسی افشین و سمد سمد آقاش تو کارخونه ریسندگی کارگر بود و ننش رخشور افشون ولی خانواده پولداری داشت باباش هتل داشت و چندین خدا جریب زمین و ملک و املاک اون زمان تو کار ساخت و ساز بود و اوتلای فرنگی سوار میشد. مادر افشون هم تو خارجه درس هنر خونده بود و یه خیات خونه بزرگ داشت خود اسغر ولی خب خیلی معمولی بود ننه ی اسغر دار بود و آقاشم یه افسر شهربانی مستبد و زده از دنیاش خلاصه میشد. شد توی دو رفیقش و ننجونش و مادرش و آقاش، ننجون ننه آقاش بود که از همون اول با اونا زندگی میکرد. داستان رفاقت این ستا برمیگرده به خیلی وقت پیش شاید جالب شده باشه براتون که چطور سه نفر از سه نقطه مختلف شهر اینطور به هم رسیدن. نقطه اتصال این ستا میه سه نفر بود. یه روز سرد پاییزی سه نفر مردن، اممه پیر بابای افشین. سر صبح نوکرش رو صدا میکنه و بعد کلی نقنق کردن یهو رو آروب میشه و میمیره برادر بزرگ سمت با یه ماشین تصادف میکنه و بعد دو روز همون روز صبح میمیره و پسر دایی ننجون از به دلیل نامعلومی که همه حدث میزنن به خاطر نیش زنبور بوده بعد چند روز درد کشیدن میمیره از اونجایی که مرگ برای همه هست و اون زمانا هنوز قبر گرون و ارزون مد نشده بود، هر سه اینا عصر جمعه برای خاکسپاری به قبرسون بزرگ شهر برده شدند. سمت که حالا تنها تکیه‌گاه و رفیقشو از دست داده بود، روی لبه سیمانی باغچه نشسته بود و خیلی سوزناک اشک میریخت اسقر براش خرما برد و نشست کنارش. از شدت سوز اشک اون پسر آفتاب سوخته ی نحیف یه اختیار زد زیر گریه تو همین زمان بود که افشین لوس تر و تمیز که پاش رفته بود توی یک چاله گل که از بارون شب قبل به وجود اومده بود اومد کنار اونا تا از شیرابه یه مصری اون دو تا پسر گریون پاشو بشوره ولی چقدر قدرت عشق زیاده اون عشقا باعث شد افشین هم گریه کنه رفیق من سنگ سبور قمه به دیدنم که خیلی تنها هیچی نمی فهم چه حالی دارم چه دنیای روبه زبالی دارم مجونمان دل زده از لیلیان خیلی دلم گرفته از خیلی یاد نموند از جوانیام نشونی پیر شدم پیر تو ای جوونی پیر شدم پیر تو ای جو حالا فکر کردین که چرا این اصر جمعه و غروبش برای همه همه همه, همه ما ایرانیا به صورت اپیدمیواری غمانگیز و روباور و رخوتناکه اصلا انگار تو کل شیش روز گذشته همه غما. با هم یه جلسه سری میزارند تو مجمع عمومی احساسات بدن و دور از چشم نماینده جمعه ها تصمیم میگیرن خرابشن یهو روی شونه جمعه پیش رو شاید برای همینه که آدما تو غروب جمعه ها یهو یاد کل دردا و رفتنا و نرسیدنا و بدبختی و نارفیقییا و ااشکارشون میافتن. دلیل این گلمبه شدن این همه غم توی غروب جمعه ها باید خیلی قدرتمند باشه. بیچاره اونی که سنسور احساساتش به هم بریزه و کل روزاش بشه غروب جمه تنهای بی سنگ صبور خونه زرد و زود تو خور توی جباد ستاره نیست موندی راه چاره نیست هگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهایی نزد اما تو کوه در باش تا قد بیارم نرد باش اون روز جمعه اصر، اون قبرستون و اون اشگاه از سه تا پسر بچه تقریبا دوازده ساله سه تا رفیق ساخت سه نفری که شاید هیچ وقت دیگه نمیتونستن همو ببینن صمد هفته بعد به اون دوتا خبر داد که برای مراسم هفته دادشش محمد بیان و همونجا گفت که محمد شماها رو برای من و پیچ کرده و فرستاده از اون روز بود که صمد و اسی و افشین شدن دنیای هم افشین و اسی خونه هاشون زیاد از هم دور نبود ولی خوب صمد خونشون ته شهر بود به قول خودش ته خط افشین و اسی تا اونجا رو رکاب میزدند تا رفیقشون و نوبتی ترک خودشون سوار کنن و روزهای پر استرسشون و با هم بگذرونند مادر و پدر افشین از سمت خوششون نمیومد اونو یه بی سر و پای هیچی ندار می دونستن که در شان دوستی با پسر تحتقاری و همه چی تموم اونا نبود ولی اون باری که افشین مریض بود و صمد بهش خون داد و شبانه روز بالای سرش کشیک داد و براش هق هق اشک ریخت حتی دل سنگ پدر و مادر افشینم برای رفاقت اونها نرم شد. جوری که بابای افشین کاری کرد که اون ستا برای دبیرستان تو یه مدرسه درس بخونن. رفاقت اونا اینقدر زیاد شده بود که ننه ریحون یعنی ننه اسقر براشون سه پنج دود میکرد و هی براشون دعا میخوند. قروبای جمعه ولی برای اون ستا یه حس دوگانه داشت. یه حس که مخلوطی از شادی اولین بار دیدن هم بود و مریه محمد یعنی تنها دارایی صمد اون ستا هر قروب جمعه سوار چرخ می و یه مسیر طولانی و تا قبرستون می رفتن چند ساعت روی همون جدول سیمانی دور باغچه می نشستن و این شروع دوباره رفاقتشون بود سمت دوباره شروع می کرد و اسیا و پشت سر اون هق هق اشک می ریختن. انگار تحمل درد رفیقشونو رو نداشتن همه آدما اون ستا رو شناخته بودن بعد سه چه ساعتم با چشهای پف کرده و پاهای خسته می رسیدن خونه. اسی دلش میخواست اگه یه روز عاشق شد شبیه باباش نباشه با مادرش همیشه ها به افشین می گفت من میشم مثل بابای تو افشین میشم عاشق زنم سمد هم می گفت آره منم میشم یه بابای خوب اصلا درس می خونم میشم یه دکتر حسابی. همین حرف صمت جرقه شد برای یه هدف جدید که اون ستا رو تبدیل کنه به درس خون بچه های اون دبیرستان. دلیل قدرتمند که از غروبای جمعه یه موجود فرافوق طبیعی زیادی از حد غمانگیز ساخته به نظر من یه چیز نیست شاید چند تا دلیلن با یه موجودیت واحد شاید هم چند تا مختلفن با ماهیت یکسان من چه بدونم قاعدتا این دلیل یا دلایل یه سرنگ گنده ی گاوکش تو دستشون دارن که منتظرن تا جامع اصر خورشید شروع کنه به غروب کردن و بدون هیچ خبری یه ها سرنگ رو کنند مستقیم تو کله آدما تا فاز با هم قاتیشه یه ها, ها توی اون غروب یاد همه چیزای خوبی میافتن که گذاشتن و رفتن اون سرنگه انگار یه تل حسرت کرم خورده است که با یه حرکت انتحاری فرو میشه تو مغز آدما و این و هی تو ذهنشون تکرار میکنه که کجای؟ کجایی؟ کجای یار؟ کجای رفیق سمیمی؟ ای بچه محل قدیمی، کجای فلان آرزو که 50 سال پیش داشتم؟ کجای کتونی سفید صورتی که هیچ وقت نتونستم بپوشم؟ کجای پیانو و آرشه ویولا؟ کجای فلانی؟ کجایی؟ اصلا اگه دست من بود قانون میذاشتم برای تمام نوع بشر که سر ساعت شش هر جمعه واژه کجایی از تمام مغزها به طور ناگهانی حذف شه اصلا اگه یه دکتر خفن داشمشتی بودم حتما شروع میکردم به کشف یه داروی که سنسور واژه کجایی رو برای اون زمان قطع کنه حالا تو که میدونی؟ بگو ببینم خوی جایی. کنکور که دادن هر یه ضرب قبول شدن هر یه دانشگاه ولی تو ستا رشته مختلف سمت پزشکی، افشین مهندسی و اسیم علوم اجتماعی هرسه با یه هاش پشت پای مشتی از طرف ننه راهی تهران شدن دانشگاه صمد و اسیو مجبور کرد به سخت کار کردن. افشین که تحمل اینو نداشت که کاریو بکنه که رفیقاش نمیکنن یا برعکس رفت توی همون رستورانی که اون دو تا پیش خدمتی میکردند شد یک کارگر ساده. ولی خب با هم قرار گذاشتن که مادر و پدر افشین بویی نبرن. البته بعدا رفتن و توی بازار کتاب به صورت پاره وقت شدن فروشنده سه تا فروشگاه کتاب همه چیز همینطوری میگذشت تا بوی اعتراضات قبل از انقلاب اومد. سمت انقلابی بود و افشین براش مهم نبود و اسی هم مخالف سرسخت. این اولین نقطه یه غیر مرتبط اون ستا بود. و شاید اولین آزمون خیلی سخت رفاقتشون اون شبیه که سمت تیر خورد و کشون کشون خودش رسوند خونه اسی از خودش ترسید چون چند بار رفت دادم در که رفیقش رو لو بده ولی بریشت و زد تو گوش خودش و باز مثل هفت سال پیش توی همون قروب جمعه کنار قبر محمد این بار لب باخچه ی خونه یه نشست و های های گریه کرد بعد با صدای افشین به خودش اومد که میگفت بودو بیا که صمد مرد اسی بودو بودو رفت و یکی از همدرسای و آورد و توی راه بهش گفت موضوع اسی میدونست اون دختره هم خط فکریش مثل صمد خودشونه شیرین اومد و گلوله رو در آورد حال سمد تا چند هفته خیلی بد بود ولی کم کم خوب شد اسی همه جا میگفت که صمد رفته شهرشون سراغ آقاش آخه سال برادرشه که هفت ساله پیش مرده توی این رفت و این امتحان بزرگ اسی شد عاشق همون دختری که سرتا پاش با خودش فرق داشت شد عاشق شیرینی که حتی لحنشم شبیه سمت بود تو رو از دور طلم می ما نمیدونست چه سرابی دیده من دیو چه میدونستم زندگی؟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 Oh hey, hey. همهد کم کم خوب شد و نمیدونم شان آورد یا منبوره سواک نتونسته بودن ردشو بگیرن. ولی هرچی بود قضیه به خوشی تموم شد. یه روز ایسی اومد و دید که افشین سفره رو پهن کرده و سمدم دراز کشیده و کتاب میخونه. نشست و رفیقاشو صدا کرد. عصر بود. از قضا جمعه هم بود. از افشین پرسید چرا صفره پهنه؟ سمد گفت تو هنوز نفهمیدی ما بدون تو غذا نمیخوریم؟ رفیقاش چند ساعت منتظرش نشستن تا بیاد و با هم نهار بخورن اسی نشست و تکیه داد به متکایی کنار دیوار و باز مثل همون سال هق اشک ریخت افشین پرید کنارش رو سمدم چارده سپا خودش خودشو بهش رسوند هردو دو که انگار داره روح از بدنشون در میاد پرسیدن چی شده؟ اسی بعد از اینکه دید رفیقاشم دارن اشک میریزن با سوز بیشتری گریه کرد و گفت من یه پست رفیق فروش نامردم سمت پرسید مگه چی شده؟ و اسی گفت که چندین بار اون شب میخواسته سمت و لو بده سمت اول خودشو کشید کنار افشین اشکاش خشک شد ولی بعد چند دقیقه سمت گفت فکر نمیکردم کردم اونقدر منو بخوایی که دست از عقایدت بکشی بعد باز هم کنار هم جمع شدن و افشین مثل مادران لغمه میذاش دهنشون همون شب اسی گفت که آشق شده البته رفیقاش می دونستن و خیلی وقت بود که می دونستن و کی شده شیرین دختر خیلی مهربونی بود به اون ستا هم خیلی کمک کرده بود شاید اصلا شبیه به اسی نبود ولی اسی اونو دوست داشت شاید چون شیرین هم مثل رفیقاش مهربون بود سمد یه روز بعد از کلاس تشریح از شیرین خواست اگر ممکنه یه وقتی به اسی بده بیاد و باهاش حرف بزنه شیرین اول قبول نکرد صمد افشینو با خودش برد و بعد از اینکه شیرین دید اونا چقدر اصرار میکنن یه روز اونا اسیو بردن توی کافه نزدیک دانشگاه افشین موهای آسی و روغن مالیده بود و سمت هم چند ساعتیو توی مجلات مده یکی از دوستاش که تئاتر میخوند گشته بود و ازش خواسته بود یکی از اون پلیور با ها و شلوارای آخرین رو بهش بده. اسی که کل به خودش نمیرسید و شبیه تمام دانشجوی ادبیات و علوم اجتماعی بود با یه قیافه که شبیه مدلای اون مجله‌ها شده بود رفت تو کافه و سمت و افشینم مثل بچهها صورتشون چسبونده بودن به شیشه های پنجره اون کافه و زیر بارون منتظر رفیقشون موندن. جمعه بود. افشین خندید و گفت به سمت که ناف کارای مهم ما رو با این قروب جمعه بریدن سمت هم گفت من در عجبم چرا همه از این قروب جمعه مینالن و هر دو قهقه زدن بعد دو ساعت اسی اومد بیرون و به رفیقاش گفت بیان تو شیرین و اسی شدند دوتا آشق دل سخته از اون روز شیرین شد عشق اسی و عزیز و ناموس افشین و سمت حتی یه بار افشین سوسول یه دعوای حسابی کرد با یه پسری که مزاحم شیرین شده بود و حتی صمد باورش نمیشد از مشتی که افشین زده زیر چشه پسره واقعا زندگی بهتر از این نمیشد تا یه روز که یهو یه شیرین ناپدید شد اون ستا کل شهر رو گشتند. یکی از دوستای شیرین براشون خبر آورد که ساواکیا شیرین و چند تا دیگه از دخترها رو گرفتن به آقاش زنگ زد و ازش خواست که از دوستای شهربانیش تو تهرون بخواد از شیرین خبر بگیرن آقای اسی اولش سر باز زد ولی بعدش که عشقای پسرش شدید. دید بعد سه روز زنگ زد و گفت که قرار شیرین رو ادام کنه. شیرین اعدام نشد ولی شیرین مرد بابای افشین تونست با کلی پول جسد شیرین رو بگیره روی بدن شیرین جز چند تا کبودی چیزی نبود سمد حد شیرین سیکه کرده باشه شیرین مرد و از همون روز ایسی هم مرد ایسی مرد و از همون روز بود که سمد و افشین هم مرده یه از سیر مش از این همه پرس زدن کوچه به کوچه خستم کسی از ن ناباوریم تو قاب خالی جنوب یک سخاکستریم وقتی که تو نیستی دنیا چیزی کم دارد من فکر می کنم در قیاب تو همه ی خانه های جهان خالی است همه ی پنجره ها بسته است اصلا کسی حسله آمدن به ایوان عصر جمعه را ندارد واقعا وقتی که تو نیستی آفتاب هم حوصله ندارد راه بیفتد بیاید بالای یکو اما دیوارها تا دلت بخواهد بلندند سرپایی استادند کاری به بود و نبود نور ندارند سایه ندارند من قرار بود روی همین واقعا فقط روی همین واقعا تاکید کنم بگویم واقعا وقتی که تو نیستی خیلی ها از خانه بیرون نمی آین. واقعا وقتی که تو نیستی من هم تنها ترین اتفاق بیدلیل زمینم واقعا وقتی که تو نیستی بدیهیست که تو نیستی توی این سانه های لحظه های آبی تو هر نکن این روز آبی خاک سریه شب ریه نکن به گفار میشید از کدوم بردارم اما که تو مست به سر او زخم دیدی که دي دي كه انقلاب شد دانشگاه ها تعطيل شد اون ستا کم حرفتر از همیشه ها هر غروب جمعه طبق عادت قدیمیشون سوار فلوکس افشین می شدن و میرفتن و پای باغچه کنار قبر شیرین هق هق گریه میگردن و بعد چند ساعت با دلی خسته و چشمایی باد کرده برمیگشتن خونه اسی و افشین درسشون تموم شد افشین درخواست داد تا بره و آمریکا درس بخونه این اولین باری بود تو کل سال گذشته که اون ستا از هم جدا می شدن. افشین نتونست اون رازی راضی به رفتن کنه افشین رفت و اسی برگشت و رفت شهر خودشونو و سمد موند همون تهران اسی اول شد معلم توی یه دبیرستان ولی بعدن چون هنوز هم مخالف بود نتونست دوون بیاره و اومد بیرون دو ماه از نوروز نگذشته بود که یه شب آقای اسی وقتی داشت گلدونا رو آب میداد افتاد وسط حیات نن رهون دوید و ننجون با لحجه قلیز خراسانی شیون میکرد آقاش مرده بود آقاش غذاب پیر نبود که بمیره رفتن شیرین و جدایی از رفیقاش و حالا هم مرگ آقاش از اسی لیسانس علوم اجتماعی دانشگاه تهران از قرقا میوه فروشه کمحرفی و ساخت که با آقاش یه دکون میوه و بار باز کرد خبر که به رفیقاش رسید سمد اومد شهرشون و افشینم هر روز زنگ میزد ولی سمد باز هم باید میرفت باید روی تز پزشکیش کار میکرد. چند سال بعد از شروع جنگ یه روز جمعه اصر که اسی با همون چرخ کورسی از سر قبر آقاش میرفت سمت قبر محمد یکی با یه صدای کلوف داد زد آهای جناب شوپنهاور مگه شما هم سوار چرخ میشین؟ شین؟ بود برگشته بود. اسی برای چند لحظه کل قموی نهادینه شده تو قلبش رو فراموش کرد. یاد همون غروب جمعه افتاد که به سردایی ننجونش مرده بود و داشت خرما میچرخوند و یهوی یه پسر نحیف و دید که زار زار اشک میریخت. چند محبت صمد خودشو به عنوان پزشک معرفی کرد و رفت جبه. اسی نتونست حتی کمی از تصمیمش منصرفش کنه اسی باز هم تنها شده بود یه روز که اسی از دم دکون با یه دونه بربری اومد خونه ننه صمدو دید که نشسته و های های گریه میکنه ننجون سری گفت که یکی از همرزمای سمت خبر آورده که عراقی ها سمت رو گرفتن ننجون با همون لهجش به باثیا و صدام فحش میداد و نفرین میکرد اسی به ننه صمد گفت خودم میرم دنبالش ننه گریه نکن ننه ریحونم شروع کرد به عشق ریختن. ولی دیگه هیچ اشکی جلوی از جلوی میوه فروشه رو بگیره که نره دنبال رفیقش شاگرد اسی بدو بوده اومد دم خونه و گفت که افشین زنگ زده مغازه اسی سوار چرخ شد و رفت و همه چی برای رفیقش تعریف کرد کمتر از چند هفته نگذشته بود که افشین و اسی با هم روی همون باغچه نشسته بودن و این بار اشک افشین برای اسی تعریف کرد که اون روز پشت در کافه اونو سمد وقتی منتظر اسی و شیرین بودند با خنده بلند مسخره کردن اونایی رو که از غروب جمعه می افشین با یه صدای بلند زجه زد و گفت خدایا غلط کردم خوب فهمیدم غروب جمعه هات چرا اینقدر غریبه خوشی رفته رفتی یا تیک کتییک که یهدم ب یا مونده بینه روزای هفته تا دست به اتفاق بر هم نزنیم پایی زنشات بر سر غم نزنیم خیزیم و دمی زنیم پیش از دم صبح. که این صبح که ما دم نزنیم من تک تک بغضای دنیا روه به آخره هلطه بده کارم با هر غروب امی میبارم با هر غروب جمعه میبارم ولی انگار واقعا رفیقشون اسیر شده بود. یه اسیر بینامونشون توی جبهه همه به اون دوتا تا میگفتن دو تفنگدار ولی اون دوتا همیشه ها میگفتن سه تفنگدار. یکیمون همین روزا میاد پیشمون. تو جبهه خیلی ها از سمت خاطره داشتن. یه شب که نشسته بودن روی یه خاک و منتظر بودن تا دو ساعتی دیگه عملیات رو شروع کنن. افشین به اسی گفت: "اسی، چقدر حشرت می‌خوره؟ حشرت تمام سالی که شما دوتا رو نداشتن." چقدر به این بچه ها میشه که چندی این سال سمد و کنارشون داشتن یسی شروع کرد به گریه کردن اونا خودشونم نمیدونستن که تنها مردایی هن که گریه کردن و نشونه نامردونگی نمیدونه افشد خواست تا بره و براش آب بیاره چون از صبح داشتن سنگر میساختن و خیلی خسته بودم افشین گفت عیسی اگه سمت بر نگرده من ازش خدافزی نکردم او وقتی که تا آخر عمرم یه تیکه از دلم میمونه زیر خاک عیسی یه سنگر رو یهو صدای خون رو اومد علی بیرون نه تل خاکی موندو نه افشینی جنگ تموم شد آخرین دسته اسرا هم اومدن. ولی علی بر برنگشت اون با رفیقاش حتی خدافزی هم نکرده بود اسی سالها بود ستی از قلبش و زیر خاک دفن کرده بود اون که با دستای خودش تیکه های بدن رفیقش رو اون شب جمع کرده بود آرزو میکرد اون یکی توفنگدارشونم برگرده تا بشه حداقل دفنش کنن و قربای جمعه بره تنهایی با همون چرخ گرسی تا می‌تونه زار بزنه از میوه فروشه امروز صبح دکونشو رو باز کرد. ننجون مرده بود. منم رفتم مجلس خزمش. نن ریحون حسابی گریه می کرد. از همون چند سال پیش که ما اومدیم این محل از قرقا میوه فروش هم دکونش اینجا بود. کلن آدم کم حرفیه. در دیوار مغازش پر از نوشتهایی که اونو از جبر حرف زدن علکی نجات میده مثلا اگه یکی ازش بپرسه کلانتری کجاست اون اشاره میکنه به فلان کاغذ که آدرسش روشه بین همهی اون کاغذا سه تا تابلوی عکسم هست یکیش سه تا پسر دبیرستانی دبیرستانین که یه لبخند گشاد زدن و کنار دوتا از این دوچرخ قدیما وایستادن یکی دیگش سه تا جوون خشتی صحنه پشتشون سردر دانشگاه تهران و عکس بعدی خود ازخرغاص که یه نشسته و آسمونم یه غروب خیلی دلگیر داره من از اسقر خیلی خوشم میاد اون یه مرد میان سال کم حرفه و پر از راز که کلی کتاب داره و بیشتر وقتا کتاباشو به منم میده یه میوه فروش که یه سیبیل گنده داره و کلی کتابای فلسفی و علوم اجتماعی همه ی زمانه دکونش باز جز قربای جمعه اون روزی رفتم دکونش تا کتاب دروا به حکمت زندگی شوپنهاوه رو بهش پس بدم. دیدم داره با یه ماجیک مشکی روی یه کاغذ مینویسه گفته بودی میایی پس کجایی؟ یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و قمه جمع اصر و غریبی حصر و یه دنیا سؤال و تو سینم گذاشتی جهانی دروغو یه دنیا بروب یه درد عمیق و یه تیزی تیو یه قلب مریض و یه آه قلیز یه دنیا محالی تو سینم گذاشتی رفیقم کجایی دقیبا کجایی کجایی تو بی من تو بی من کجایی رفیقم کجایی دقیبا کجایی کجایی تو بی من اون دلیل خیلی گنده قویه میدونین چیه که این جور غروب جمعه رو غم زده میکنه با چشمایی باد کرده و دلای خسته جمعه ها غروب که میشه آدم یادش میفته که از فردا باز یک هفته پیش بهترین کساش نیست آخه آدم وقتی کار میکنه یاد اون کسایی که نیستن نمیفته یا شاید وقتشو نداره غروبای جمعه یه سر و گردن از خود غم هم بالاترن. اصلا فکر کنم خدا اولش غروب جمعه رو آفرید و بعدش وقتی دید خیلی قدرت نابودگریش زیاده غم و با یه درجه تخفیف جایگزینش کرد شایدم غروب جمعه تاوان همون به گندم نشانیه که آقای آدم و خانم حوا خوردن انگار خدا هر جمعه غروب یاد همه ی نوع بشر میندازه که چقدر قریبن و تنها و دردمند قرار بود این اپیزود شاد باشه ولی اصلا اسم این غروب جمعه که میاد بوی غم و تنهایی و رفتنا و نیومدنا و اون خرس سفیدی که بهش دادی و انداختش دورم باهاش میاد اصلا باد هم شالگردنهای بنفش آلم و با خودش برد بیچاره اونایی که کل روزا و ساعتا و سانیاها و اصلا کل لحظه هاشون اون قروب جمعه پاییز سردی هستن که ساعتشم از غذا هجده ولی این دختره که همیشه ها بنفش ما دوست داره به اندازه یه نیم ساعتم که شده سر ساعت هجده جمعه بیاد تا کمی از بار غم این روز رو از روی شونه های خود این روز بیچاره و دلای مردمون برداره. من مصطفیم و اینجا رادیو هجده بنفش بود و شما به اپیزودی گوش دادین که قرار بود شاد باشه و شادی بیاره ولی نشد که بشه. اینجا رادیو هجده بنفش بود و شما به اپیزود دوازدهم از فصل دوم اون گوش دادین. اپیزودی که تقدیم شد به همه یون اون کسایی که رفتن و نیومدن و غم رفتن و نبودنشونو انداختن گردن این قروب جمعه بیچاره ما رو در کانال تلگراممون با نام رادیو هجده بنفش با هجده عددی و بخش پادکست های تارنمای بیپتونز دنبال کنید مهربون باشید و شاد و مهربون یه دنیا قریبم کجای عزیزم بیا تا چشم تو چشمت بریزم نگو دل بریدی خدا نکرده ببین خواب چشمت با چشمام چی کرده همه جا رو گشتم کجای عزیزم بیا تا رگام تو خودت برید بیا رو تو رو کن منو رو کن یا زخم ها یه جوری رو فکر عزیزم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بیم من تو بیم من کجایی عزیزم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بیم من تو بیم من کجایی